سفر امریکم مراجعت کردن... و... ...ز فلان مدام شده... ای. ای اونی برای بنده که بخشنامیاد میاد میدوند فلانی ...خواهش بز فلان به کارگفزینی مراجعه کنید. مراجعه یه منی به دیگرده... ...مراجعت یه منی ...اگه بینیستن روز فلان به کارگفزینی مراجعه کنید، آسنه نمیشن. اگه بینیستن که از... ...سفر اروپا به مراجعه یه منی پیزیکی ها ده مراجعه یه منی در حال تین دیتا یکی اینا که ما بلاهایی که سر دوقات عربی آوردیم بازم درست مرد هنوز فکر نیستیم که اینها رو دور نمیدونم از این کارهای بچی بودم بعدا مستشار بیاریم که آخوز تعدیر رو برامون از رو بخونم هیچی غلط نیست کنم مردم میشید به کارت من همون درست برای زبان اصلا قرارداده زبان هم به قراردادیه چرا شما نون میگین نون چرا اصلا نداره برای اینکه پارسی زبان ها میگن نون اگه پارسی زبان ها همه قرارشون برگردوندن آب گفتن جای نون چیزی که نداره که ذاتا یعنی به صلاح این بستگی نفس الامری که نداره که خون برای زندگی نمیشه گفت چرا اون لازم برای که اگه می ولی این که اونجونیم یه روزی مراجعه به یه معنی بوده هست حالا یه جوری به کار میبرن، حال دارم میبرن، چه کش کریم؟ ما مربوطی سرابه بکنن، لغات ما گرفتیم، آن خود اونه مگه اونا لغات فارسیر که میگیرن بندارم میبرن مگه احسان میزنن؟ مهرگان فارسی رو کردن مهرجان به عنی فستیبال بکاری مدنید مهرگان چرا افتیه فستیبال نه دیگه وقتی لغاتی رو گرفتن آوردن در زبانی دیگه با حضرت رو میخان بکاری نه دیگه اولا که اون،, اون مسئله چیز اون مسئله مسئله ادبی است دیگه انام رو کسی به کار انام رو به من این چهار پایان رو که تقریبا هیچ کس کار نهید یعنی فقط سر کلاه هیچ یه وقت توی حرف زدن این که ما میکیم تغییرات میشه تغییرات از دفعه محروف بایدان لغت درست صافی رو آدم غلطی به کار ببره بعد هم این دیو میشه در که مشکلی درست نیست انسجام به معنی روانی شعر منتجم این شعر روان چهر محکم ایشه چهر جزیر جزالت یعنی استیفان حالا میگه سازمان ما سازمان مجاردی مثلا سازمان ما هنوز منسجم نشده بود یعنی محکم نشده یعنی یه فرهنگ درم نگاه میکنه آخه یه وقت سه دستر لاحبوزه داره هر بزنه یا سه دستر برقبال از اون یاد نمیشه گره هلی آقای که لیسانسی او، اون تو بیانیش نیست منسجم هم سه دستر به درستان به کار نکنم آدم های در سونده به کار برای قلط می کنن قلط یه ذره ثوابشون بهتر کنن سبب این فرمت کلمات اصلا این کلمات رو به فرانسرش کنن مصوان یعنی کلمات دانشمندانه کلماتی که آخه شما تیجا توقع نداریم که استادتون مثلا وقتی میاد اصطلاح ها بیره میخواد بگیر قلط میگیر مجمی جون علیه مثلا فرس یا اون سالح و بگه موسیلح خب نمیشه ولی این که اینکه لوقات مردم نیست اون معتقده که حقوق ولده اومده بگه که چنگه احبت چه حقوق ولدی محروم میگه میر حقوق ولد زنی که میرم حراجونم آزاد اون, اون اشکال نداره ولی استاد حقوق مدنی اگه من سرکی راست کنم میرون اون یه از اون خب ارز کنم که اماریدار لیلا را لیلا یا لیدی حرب دلتون میخواد بخونید اماریدار لیلا را که مهد ماه در حکمت خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آمد. و این اصلا خدایا خدا راه بگذاشت خدا راه خدا راه یعنی برای خدا برای خدا چی تو دلش بندازه وقت که اگه خدا یا در دل اندازه یعنی ای خدا تا این کار کن درست هست. این یک. دوبام اینکه که اماری به معنی تخت ربان تخت ربان عبارت بوده از این چیزی مثل مصند، مثل سندلی، مثل موبل، مثل جای تخت چه آقا روش مینشستن و بالش داشته و بسینگ استراحات میکردن و پایهاش و داشتن که خویشون مگرفتن مردم این هماری، ولی دیگه را که مهد ماه، مهد یعنی گه بار باره هم یا باره دو بخمت گاه گا به منی تختی وارم بساوند تشمیل گاه باره شمس تخت نزل باره و سنگ باره نیستا میسته سفران تازیکی بله میگه اماریدار لیدی که گهباره ماه در حکم اوست ماه محسود اون لیلیه نه ماه هاسمی لیلی که گهباره ماه در حکم اوست یعنی تختیرمان لیلی خدا یاد در دل که بر مجنون گزاران روشنی که بسیار بسیار نادر نه خونده شده ولی معمولا نی خونده میشه تحدیه ازالی داره یه بندی از ترکیب بندش هست ای همچنو لبان و شکر نی بادام چو چشمتی پسر نی چه و چه میتونه دیگه خوبشان نهی میشه بس بس به تو زرهی سمرنی اینا رو هماری میشون نیخون جزیه به تو میگه پیران جهان نشان ندادن چون تو دگری به هیچ قرنی این قرنی ری کنیش تو گفتر نی بنابراین هیچ شکی نیست که اینا رو باید نیخون اون خواهی دل وگر نی این چمن هر سال این نی در حقیقت یا های های همون به صورت کسره کشیده و اگر نه های مجهول که در داد خرافان اونجا هست به صورت کسره کشیده به کار مثلا شیر در رنده رو همون در پاکستان رو نمیگن شیر مولانا میگه که کار پاکان را پیاس از خود مگیرگر باشد در نوشتن شیر شیر یه در نوشتن یه یعنی در خوندن یکی نیست به اعتمال قوی خودش این شعر اینجور میخونده کار پاکان را بیاست خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر شیر در رنده بایه مجبوره شیر سفید توی بادیه بایه های معروفه یه های به صورت یک که شیده طرف خود میشده قدی واب مچولم به صورت یه ذمه کشیده چیزی که توش نمک داره که حالا میگیم شوره‌ بعد میگفتن شور فوربا الان آشو در چیز در از زدن من گفتم شوربا حالا خیال فاص شوربه یهشون گفتن گفتم شور وا میدونی چیه گفت بعد شور گفتم نه گفتم تازه گور خونی و سب تین شورشین نمکیات با یعنی آش یعنی آشی که آشپزی یعنی آش که تاش فقط نمکی شور با یعنی آش ترکه با یعنی آش ترکی دوجه با یعنی آش توکی پس چنین دارم که بولعلا و همه او له نحو ذواب له حیا دور در پرد موت با اجازه دستور خادم او کیجه با به منظر او بود یعنی آش کشته برابر که تحصول به هر دو دیده بیم شد گفت چرا ماکیان شدی نشدی شیر. تا نتواند کسید به خون کشد و بود. بعد برای زعیم طبیعی هر خبری اول و سپس موند بس ایرک صحیح. این منطقه امروز چون ما یه, یه محروف از هم فرق نمیذاریم اینه یاد داشت کنیم به خاطر تون بمونه برای که چهار روز بعد به کلی از تون که جای محروف یا محروف میدید بعدا تو برهان قاطع نگاه میکنیم نوشته فران کلمه به باق محروف بعد بگوید خدا باق محروف محروف چیم رو. این محروف محروف میدید نه باید این همین تلفز, تلفز نخلی کلافوز فقط دو دستوری از کن <متصفح> نقریبا، نقریبا همون یاهای مجموعی کنید یاهای مجموع مثلا دست رکشید اینا مسائل عدبی دیگان سعی نکنید خیلی شبیه بگنید که کار امروز این رفته از این در زبون رسمی فارسی رفته از بهیم ولی در داحت خرافون بریم در پاکستان بریم در افغانستان بریم در پاکستان بریم نمیخوند کار اون خواهی دل. اگر نه این زمان هر سال چون نسریم صد گل آراد بار و چون بل, بل هزار آراد میگه تو عمر خود تو بخواه از خدا بله این جریان همجور ادامه داریم این بهار هست و این پاییس هست و توف از بایف و تاوزمان یک لحظه تاوزم یه بهمند خدا رحمت کنه باها رو یه قصیده داره از پنجه و پنج سالگی خودش چون زبان حال منم هست یه چند چی میخونم براتون میگه زد پنجه و پنج زین پنجه از این گشتم من نکرد زوبه سر پنجه با پنجه روزگاه به مرد شد چود رنگم راه در نقشونگار ساوی و روشن مویم به مسل که صبح روشن شد روزم به مساوه سب عدکن گریان گشتم ز پیدری و خندی بر گرگه من ستاره رید من برحاظ از برم گریان تیری به برم تفید چشمک زن آن یک به هزار نعمت آماده. بین یک به هزار محنت آوستن حیحات جوانی ها کجا هست بازا کسدین گفت در گردن دادتو ندادم اون همایون روز که از قیز تو بود ساقدم گلشن بودم سربست و فتت بادون چون بردبهی من روینتن نه لاغهی رستمم دران مستی ره بنمودی دفن به پسلوبتن ناغاز کید زاق گرمون زد پیری تیری به چشمم از آمن دینک بنامون در دامی کذبه نرهد به مکر و فند فن، زیفن. یک صوب بسته شش نر و چون کرخران تموف هر و هرگردن یوها که لغمه ساغن بر صفر اگر نهی و هر کاف را خور در خواب و, و روخن در بدهی او خدا را روزی که جوان و بودند بودن قصبه میهن در که پیر پیری به زمانه نیست که تو بخواه ایلا چمن گل اینو سر جش هست هر سال هست هر سال هم همین وسط اون اون چهره بسیار زیبای گفتگوی خدا رحمت شده با شم شبستانش بگه شبیز شم شبستان پیش پرسیدم چه روی داده که لبزی به زندگانی نیست و شاهد صبر سبران نمونده شیرین شمی بهش شبگو و شمدانی نیست نه چشمک ایست درختر نه در مهدا همه قم است. یکی شوب و شادمانی نیست چه روی داده به تهران و برجت است که سرزمین دلنگیز آن زمانی نیست به توی میکده آنهایهو نمیشنم شراب رازگران زور و بحلوامی نیست بهار که به بهاران نه خزان نگر که به چهیجت خزانی نیست به من همه رنگ ها عوض شدن صفای آبی و افصان آقاقی نیست لاغ نوت پرون شستند از شمشا جلاب شو به گل ها نیست این نیست اون نیست این نیست اون نیست, اون نیست. جواب شم یک کلمه شم بکنن بخوره شعلهش دیگه میگه به خنده گفت شم. شم. شم خنده پشت میگوند لرزش شولش. و به خنده گفت و خود را که این همه هست ولی و چشم توان اینک جوان <تصفح> بر بارمون خواهی و وگرنی نیم چمن هر سال چنان سین این سب گل آرد با چون هزار آرد این کلمه هزار و هزار و هر این همون عددی عوض داییشم هم, هم. هلنه خازی میتونه با دفعه نیست فرق به خلاف مثلا کناری که صداش خیلی دلپذیره ولی یه نواه گربل این طور نیست گربل هر دفعه که میتونه یه طور و به همین دلیبش میگن هزار دستان اینجا هزار البته قید کسرت عدد نیست قید مبالغت یعنی ایگونی که بسیار آهنگ و نواه چون این عداد بزرگ دارایی به صورت قید کسرد به کار میرن مثل هزار پا هزار پا که هزار پا نداره که هزار پا این یعنی دارای بسیار پا آقا با اون میرسم من هزار دره و هزار مسجد نه هیچ کدومشون هزار تا ندارن یعنی دارای بسیار دره یا خلان یا خلان قید کسرد همچنینه صد صد دفعه گفتم این کار نکن یعنی بسیار گفتم قید مبالغ هست تهل همین که بار، با سی بار به تو گفتم این کار مثلا نکنید اینا قید مبالغ هست یه حتی عددهای کوچیک قید مبالغ مثل چارشونه چارشونه که چارشونه که نداری که یعنید تماما یا چاربرو آدم هایی که عبروشون قرخده یکی از رجال بعد این بود که هم هست و زیر بود اینا بسید میگفتن میتی چاربرو عضو به قصش دیگه. باز بونم که چهار تا قید... کله آدم سرش بزرگ بود رو حس نکرد مثلا. این کید مبالغه. ولی معمولا اعداد بزرگ کید مبالغه، اعداد کوچیک کید قلت آسمان اون وقت روشین از مکتن در اسم خرمن ما به جوبی، خوشه پربین به دو جو. دو جو و دو تا دون جو که نیست یه مشت خوشم. دو قید خلطی هم میگه سن پول ندارم سن پول ندارم و هم جیبتون باشه ولی پول ندارم عداد کچی به صورت خیلی خلط بکار بیده به غیر از عدد اعداد بزرگ به صورت خیلی هستن رو بهش میگن هزار دستان یعنی هزار تان همه ماهنگ میاره اینجا حافظ حاک رو کرده با این کلمه هم هزار رو بلبل رو برده هم هزار عدد رو جنبی عادت نکریدی چاست؟ چون بسیار. چون هزار آورم. و هزار منی بول کلمات. خب خوش گلرنگ و آن بنافشه زول هزار خرمن گل در کنار باقیم نیست به تیر غمزه دلم سید کرد و خونم ریست کنون به کسته خیش از گزار باقیم نیست بس از گذشتن به هج دوقت وحس سه شام تا به بایدار بایدونی نیست دلم سیح شد از آن کافمان بخت مرا ستارهی به شبه انتظار بایدونم نیست به ساغر ترابم خونده نبایدون هست به جام نوشین نوشینگوار بایدون نیست خریب برون شدن از هفت